but it's home how often does a train go by please? so often you won't even notice it از اول پرسید که این قطار هر چند وقت یه بار رد میشه. گفت اینقدر زیاد که حتی متوجه نمیشیم همین دیمدن در مورد چی صحبت می‌کنه ما انسان‌ها به امور روزمره عادت می‌کنیم به چیزایی که می‌بینی باهاشون کار می‌کنی من به عنوان طراح تجربه کاربری شغلم ایجاب می‌کنه که این امور روزمره و احساساتی که کاربرها موقع استفاده از این محصولات دارن توجه کنم یه مثال ساده می‌زنم حتما تا به حال بارها و بارها رانی خوردیم. هر بار که قبلا سالها پیش این آبمیوه‌ها توی این ش... بسری های آلمینیومی به مردم فروخته نمیشد، توی شیشه‌ها ها فروخته نمیشد. و لازم نبود که برای خوردن اون میوه‌های خوشمزه که اون تحگیر میکنه اینقدر حرص بخوریم. ولی الان وقتی که این آب میوه‌ها رو می‌خوریم، مجبوریم که بعد بعد از اینکه تموم میشه، ظرف رو برعکس کنیم، چند بار بزنیم تهش تا اون میوه‌ها بیافته. و بعد هم که عصبانی میشیم و احساس کلافگی میکنیم. با عصبانیت، و اصطبانیت می دازیم زباله. نکته جالب اینجاست که شاید دفعه اولی که این کار رو می آب میور رو می خوردین، برعکس می سعی می که اون میوه ها بیاد بیرون، احساس کلافکی کردید، ولی بار دهمی ده که این کار رو می کنید، دیگه این احساس رو ندارید، چون بهش عادت کردید، و بار صدایی که این کار رو دیگه وقتی که این اتفاق راحت میگیره دستتون میخورید یه تلاش می که برای میوه ها بیاد بیرون و این اتفاق نمیافته و و میندازیدش دور. ام. چرا این اتفاق می چرا مغز ما به امور روزمره عادت میکنه؟ در واقع ما انسان ها قدرت مغزی محدودی داریم. مغز ما این امور روزمره رو تبدیل به عادت میکنه تا فضا رو برای یادگیری دانش جدید آماده کنه. ام. این روند خوگرفتن نام داره. یکی از اساسی ترین راهای یادگیریه. فقط ساده می‌ذارم. یادتون بیاد وقتی که می‌خواستید رانندگی یاد بگیرید من یادم میاد کاملا دستانم کشیده بود و محکم فرمون رو نگه می‌داشتم. خیلی کلافه کننده است به همه چیز کامل دقت می‌کنید به همه جزئیات به موانع ماشین‌ها آبرین و و همه چیز رو کامل می‌بینید. اینقدر که دقت می‌کنید و جزئیات رو سر می‌کنید ببینید که نمی‌تونید آهنگ گوش کنید و با دوستانتون داخل ماشین صحبت کنید. که به این امور عادت کنید و رانندگی براتون دیگه یه چیز طبیعی میشه دیگه هر روز دارید انجام میدید یواش شباش ازش لذت میبرید دیگه میشه طبیعتتون و مشکلی باهاش ندارید و دیگه اون میشه شامل طبیعتتون دیگه مشکلی باشه نداری ازش لذت میبرید دوباره میتونید آهنگ گوش کنید و با آدما صحبت کنید داخل ماشین اه ولی همیشه خوب گرفتن چیز خوبی نیستش چون که باعث, میشه که باعث میشه که ما نتونیم مشکلات رو ببینیم مشکلات امور روزمره رو و این کاریه که طراها، کارافرینها و نوابرها میکنن اونها یه قدم جلوتر میرن و سعی میکنن که این مشکلاتی که هر روز براشون اتفاق میافته رو ببینن اما یه اتفاقی میافته. کاربرها در مقابل تغییرات مقاومت میکنن نمیذارن که این تغییرات اتفاق بیفته نمیذارن که نو این کارآفرین ها کاری که میخوان رو انجام بدن ویدیویی که میبینید اپدیت iOS 7 و بازخورد یکی از کاربرانش خب مثل اینکه ویدیو پلای نشد، این بچه عصبانی بود و میگفتش که خب چرا تغییر دادن؟ من این تغییر الان متوجه نمیشم و پدرش بهش گفتش که خب اراد نداره به مورد زمان عادت می‌کنی. گفت نه من دیگه الان نمیتونم با این احساس خوبی بهش ندارم حالا امروز میخواییم در مورد این صحبت کنیم که چیکار میتونید بکنید که کاربرانتون حس خوبی داشته باشد وقتی که تغییری مید Well, you're just going get used to it. No, I don't want it. کوربارا هست خوبي از تغييرات ندارند به خاطر اینکه بهش عادت کردن. خیلی طبیعیه. مثل میمونه که مثلا مادر شما میاد داخل اتاق شما و اتاق رو مرتب میکنه شما میگید که این بهبوده، این تغییر تغییر خوبیه. ولی شما میگید که لطفاً به وسایل اتاق دست نزن. چون احساس سناریو یزتی چون احساس نارهیزتی از عدم کنترل شما روی اون اتفاقی که افتاده است شما می‌خواید روی زندگیتون کنترل داشته باشید کاربر هم همینطوریه شما محصول رو بهش دادی اون حس خوبی نسبت به محصول داره حالا اگه شما تغییری توی اون محصول ایجاد کنید دیگه کاربر حس خوبی نداره و میخواد روی اون محصول کنترل داشته باشه در واقع اینطور نیست که همیشه کاربران و تغییرات بعدشون بیاد ولی وقتی بعدشون میاد که باعث بشه که اون تغییرات مجبورشون بکنه تا چیزهایی که قبلا غلط بودن رو دوباره مرور بکنن یا مجبور باشن با چیزی کار بکنن که احساس راحتی باهاش ندارن. امروز فکر در مورد یه سری راهکارا صحبت بکنیم که میتونه کمک بکنه که محصولتون رو در فرآیند واصراحی یا تغییراتی که ایجاد می‌کنی طوری باشه که کاربریتون باهاش احساس خوبی برقرار بکنه. اولین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که قبل از اینکه تغییرات رو اضافه بکنید محصولتون رو کامل هست نکنید یعنی وقتی تغییرات ایمان شد محصولتون رو عوض کردید به یک بار محصول قبلی رو عوض نکنید یکی از برندهای چای ایرانی در سال 1332 با هدف توزیع و واردات چای خارجی در ایران شروع به کار کرد بعد از سالها تصمیم گرفتن که چای ایرانی تولید بکنن و یک بار چای خارجی رو از کلم برنامه‌شون حذف کردن و چای ایرانی وارد این بود که مردم کاملا مقابله مقابله که از آن گفتن که خب ما دیگه چای از برند شما نمی و ما چای ایرانی نمیخوایم بخوریم. اینبار یه متد چای ریختن. اینطوری که اومدن چای همون چایی که داشتن میدادن چای خارجی رو درصدش رو جابجا جا کردن. 90 درصد چای خارجی، 10 درصد چای ایرانی. 80 درصد چای خارجی، درصد چای ایرانی و همینطور ادامه دادن تا اینکه ما امروز 100 درصد داریم چای ایرانی اینها کمک می وقتی که شما دارید با م... یو... کاربرتون ارتفاع پرقرار می‌کنی، اون متوجه میشه که خب این, این... این تغییراتی که داره اتفاق می‌افته، یوار شواش بود و باهاش خوب می‌گیره. روش دوم اینه که سعی کنید کاربرتون, کاربرتون رو بشناسید. شما در واقع برای کاربرتون تراحی می‌کنید و لازمه که کاربرتون, حت... م... کاربرتون رو نوع رفتار کاربریش رو حتما شناسایی بکنید. یکی از برند‌هایی که ماشین تولید می‌کردن، برای جلوگیری از این بوی داخل ماشین که بوی نفت میده، یه فناوری رو استفاده بکنن، اینطوری که این بو رو با یه سری عطروب، یه سری بوهایی که میتونست این بوی نفت رو بوی تازگی رو خارج بکنن از ماشین استفاده کردن. برای اتفاقی افتاد این بود که مردم همه این ماشین‌ها رو مرجوع کردن. گفتن که نه این ماشین ها دست دومه. اینجا نشونره که شما حتما باید کاربرتون شناسایی بکنید بدونید که کاربرتون چجوری جوری دوست داره و از شما چی میخواد. سومین اینه که حتما قبل از اینکه تغییر ایجاد کنید از کاربرتون بپرسید. شما دووادهین برای کاربراتون طر میکنید. پس حتما لازمه که ازشون بپرسید که چیجوری دوست دا چی میخوان؟ و قبل از تغییراتی را ایجاد بکنید توی مسثرتون خبر بدین که، تغییراتی در راه و ما قرار اینها رو تغییر بدیم و به این دلیل و دلایلش رو کاملا روشن و واضح با کاربریتون دربیون بسازید. کاری که این اتفاق باعث میشه که شما کاربرتون وقتی که محصول رو از شما دریافت میکنه وبسایت اپلیکیشن یا هر محصول دیگی بدونه که باید بهش چه جوری کار بکنه و بهتره قبل از اینکه این محصول رو در اختیارشون قرار میدید یک سری ویدیو یا یک سری اطلاعاتی که کمک میکنه اونها رو کامل درکان و باش اطلاع بقرار کنن براشون آماده کنید. اینجوری کمک میکنه که وقتی که ما دوباره میخوایم رانی بخوریم، یک کسانی هستن که بهتر محصولات تر این محصولات رو تراحی بکنن. و دیگه ما این مشکلات رو نداریم. ممنونم، مرسی.